لکتیبخانه شپولی دنجی چیتی نبیناینی کردستان دستهی بالا هولیر کتیبی سرکوتن تان پیشکشدکین نوی کتیب، کتیبی سرکوتن، زنزیره سرکوتن نوسینی دکتور ابراهیم الفقه ور سرور حسن علی نوبتی چپ، چپ یکم پیچنین گوران حسن نقشه سازی چاپ چپ چپ خانه چورچره هزار دانه جمعه سپردنی 672 سالی دو هزار و شش خنوی سیاه دنجی روشگر شادی برواری تومر کردن 28 تی یازده دو ده دکتور ابراهیم الفقیل چاندیرکدار دامه دا زرینرو و اوچی انجمنی بر ریوبړنی کوملایکوم پانیه کانی ابراهیم الفقی جیهانیه دامه زرینرو سره اوچی انجمنی بر ریوبړنی ناواندی کندیه بوهیز یوزیم روی ناواندی کندی بو خواندن به ایهاو ناواندی کندی بو گشپیدانی مرویو ناواندی کندی بو برنامه رژیمانیانې د ماری و زرینرو سره اوچی انجمنی بر ریوبړنی کمپانی کیوبیسا دكتور لزانستي ميتافيزيكا لزانكو ميتافيزيك للوس انجلوس لولادة غرتوكاني امریکا دكتور ابراهيم الفقه دانا رزانستي ديناميكا راهاتني دماريا دامزرين رزانستي هزيوزة امروية راهنرو باور پیکراوا لبرنامه الرجي زمانياني دماري دا البرمجل لغوية العصبية لدامزراوي امریکي بو برنامه الرجي زمانياني دماري فیرکاری باور پکرا ول چر سر به خواندنی مغناتیسی ل دامزراوی امریکي بو خواندنی مغناتیسی فیرکاری باور پکرا ول راهنری باور پکرا ول یادګه اذاکره ل پيمانګه امریکي بو راهنری باور پکرا ول گشپیدانی مرويده ل حکومت بو کمپاني او راهنری ريچي ل ناوندي ريچي کندي دامزراوي ريچي پلایش شرایفیه کامیل رفتاری مروی به دستی نوا، لذا مزرعهی امریچیبو میوانخان کن. پلایش شرایفیه کامیل برای او بردن او، کریو فروشتند به دستی نوا، لذا مزرعهی امریچیبو میوانخان کن. بیستویس دیبلو موسس دان لپسپوری برزکانی ل psykology و برای او بردن او، کریو فروشت نکانو گشپیدانی مرویده به دستی لجماریگ لمیوان خانکانی پینج استیارده لمنتریال کندا و اگبرای و بری گشتی کاری کردوا چندان روی چی هیا؟ کبو هر سه زمانی انگلیزی و فرانسی و عربی ور جرد راونو پتر لملیون اگدانی لجهان ده لفرش راوا مشقو راهنانی با پتر لشش سات هزار کس کردوا لمیانی وانکانی و لسرانسری جهان ده مشق وانو اتنوکانی با هر سه زمانی انگلیزی و فرانسی و عربی ان پالوانی پیشوی مصره لتنسی سرمیز دو لپالوانیتی جیهانی ده للمانیه لسالی 69 ده وگ نماینده مصر بجداری کردوه. خوانی پیشتینی رشه لکنگفو ده لمنتریال ده لگل هاو سرکه اعمالو هر دوکچه هاو ده دجیل. کل چیدلندر بارے داکتور ابراهیم الفقیح داکتور ابراهیم الفقیح د یارټریم بواری گشپیدانی مرویدانری درلین مونجموری ټلویزیون لوزیانا ویلاته ګرتوکانیا امریکا لزانستابیسونو راکی دا قسم وګ او نبینو ایلان بلوتر ټلویزیون ٹی وی ای کندا ابراهیم الفقیح له بشټریم وانو به الان روش ټلویزیون سی ایف سی اف مونټریال کندا محاضره دکتر ابراهیم الفقیل باشترین و به هستری موانکانه و ریزی هموانی بدسته نوا محاسن البکری کمپانیای هیلتونی جیهانی هیزو توانایی چی بیسنور و جوانو ده هنانی بیوینی هیله هونری پیشکش کردند مشیر بردعی بر ریوبری برو بوم امروی یکن زنکوی امریکی لقاهیره وزهی گوره جوان بهردار انسکلوبیدیا یک لزانیاری وگی اکم مسلمانی عرب شانازی پی ودکم زهر عبدالحمید عیسی دا مزراوی عبدالحمید عیسی کویت باشترین اوانیا کبینیو من سعید عبدالله موظلوم بر ریوبری چاو دیری جودی پولیسی دوبی لکمترین وانا بیجکانی جیهان کنمونی ام تواناو لیهاتویانان هیا زیاد لوی پیش بینیم سودی پی یوسف احمد جبریل دزگای پلاندانان گشپیدان دوبی خيالي دا هنر ديناميكي پیش بینم ندكر لجيهاني عربی من دان نموني او ببینم. فیصل مشاری عمر کمپانياي نشتیماني بو خزمت گزارية تندرستيکاني سنوردار سعودية. دکتور ابراهیم الفقه ببهسترين وانا برجه کاني ام سردم دادن ره. ملهم محمد حسين دا مزراوه نشتیماني كريف روشتن سعودية. برای من دکتور ابراهيم الفقه لباشترين وانا برجه جيهاني کان KBL، لویزانا، ولایت گرتوکانی امریکا. زیادر لجوانی ولیهاتوی بی هوتا لحنری نمائیش ده. دکتر کلیمند جونسون پزیشک، تکساس، ولایت گرتوکانی امریکا. بطوانای و بخیرائی و ببهی زواده گات جوه، پیشتر حوشوی اوم هر جیز نبینی و. کریستیان مکدونالد، بریستال مایرس، منتریال کنه ده. دکتر ابراهیم الفقه، فیری حنری جیانی کردم و رگای میشل جایان سرنسری روشنامه اکتوالیتی منتریال کندا کارکانی دکتر ابراهیم الفقه از منی تمن پیویست در فت با همون کسک بدره اماده هم بید روز سولازو ای تی انتی منتریال کندا دکتر ابراهیم الفقه رگه جیان چی باشتری با کرد مو سازین جارز دو کمپانیای فروکوانی کندای کندا به هوته لجوری او، لبیستین و باشترین و آن بیشتر جهانی کاندیدج دا می‌درد. فرانس مارتل بیجار، تلویزیونی کبیک، کانالی سی جی ام، کانادا. دکتر ابراهیم الفقی توانی لماوی هشت کاج میرده. هیو برزخوازی لدرونی آمده و اندبوروش نه. هرواتوانی بینین و دیتنو رعایمان رمکاتو لذیش منده خوشویستی و یک برانبر با خویب خلق کنه. اما شوکیشی کلوپریگرانیده. راجل روزان کسیکم نبینی و. توانی بیتی به هم او خصلتا نوا سرکوتوبه و سرکو دیتاس کندر سروش انجمنی برای ورنی کمپانی مصر و روشلاتینا اوراست مصر نایاب تایبت شوازی چ تامزرو وانکانی له درګای دل او هستیدامو ریروی بیرکنوی جیانی ګورم عزت فرحات برای بری برګوم امر یکان جانسن و اکس مصر ډاکټر ابراهيم الفقيه مازی کیشی تایبت دښنه جهنن نو چکان لیوان لیو دک هاد لوزا نیگران برو برزای یکان جیان د برگوی به امید و حزی سرکوتنو رو ولود کتسون برنامانوس منا عبد الجلیل کویت زور نایاب لو با اوردان نبم اوانده خاچیو گرینجی پی در بیت بو کسانی مشق و راهنان یم پیدکات عبدالله الله حرص سروشی سر بشی موزیک رادیو تلویزیونی دبی امارات یچی پیوست. دکتور ابراهیم الفقی یکی کل وانه بیچه بنا و بانگ جهانی کان کسی چی بتوانه و خوان بهره چی جوری لگیاندنی بی رکانیده به برانبر شوازی چی ساده واقعیه و, واقعی و دهنان کاری چی مزنال بواری گش پیدانی مرویو برنامه رژیز منیانیده ماری و زیم مرویو بوار کنی برای ابردومیوان خانکانده سربری همو آمانش زوربخشندیا لپیدانی به لو كتباني بزماني عربي بلاوي كردونا توازن زنديري ساركوتنا سلسله النجاح كتاهنو كا دو زنديري لتشابو بلاو كراوتو يكم ياندك للاكي ساركوتن مفاتح العشره للنجاح ودومش هي زيداز بسرداغرتيني خود قوت التحكم في الذات ام كتبا هردو زنديرك لخودا غريو شيوازيكي گنجاوي وهاي هيب بغاة همو خينريك لكتب يكم دا بكل لكاني ساركوتن بديدي دكتور الفقه اشنا دبيت؟ اوانیش پالن رکن وزه، لیهاتویی، مروند، کردار، پیشبینی، وابستبون، هینانا پیشتو، آرامگری، رکری. پرشانیش بو برودن بطوانستی زالبون و دستبسر اگر تین خودی مروف، خوی پینج فاکتر اخواتن لگل خود بروامندی شوازی تیروانین برو و هستو سوزکان رفتر بو او مبسته لکتی بیدوام داخران تروب. خو وردی وی ام کتابه اگر پی کرد استیکر خو جارک زیاتری رنگه جوش و خروش چې وهات کې د خلقینه برویتو نو واستې تو په تو پلکاند سر تا دګیت تا دګیته ځایه خاصره وخت مابستو امانځګلې کروجانه کې پیوین ماندوي تو په دست یې نه هني بخوناسین تو انو تای بدمندی لري هټو یکا اگر ارادهت لګل رین مایو اامه ځکانده تریب و وخت یک دروانې ته درست لوجی گای پی ترابک، تروبک سرکوتن که ایدیلبه تنها به سینان و آرامی و جوانی لی ورجر سلیمانی سال 2006